بلبلی خون دلی خورد و گلی حاصل کرد باد غیرت به صدش خار پریشان دل کرد توتی را به خیال شکری دل خوش‌وود ناگهش سیل فنا نقش عمل باطل کرد قررت عین من آن میوه دل یادش باد که چه آسان بشد و کار مرا مشکل کرد ساروان بار من افتاد خدا را مددی که امید کرمم هم رهین محمل کرد روی خاکی و نم چشم مرا خار مدار چرخ فیروز تربخانه از این که گل کرد آه و فریاد که از چشم حسود ماه چرخ در لحظ ماه کمان ابروی من منزل کرد نزدی شاه رخ و فوت شده امکان حافظ چه کنم بازی ایام مرا غافل کرد